محمد روح صدقه الله <سؤال> محمد روح محمد اهل بيت قیبینا کارینا المحسومین رسی و مغفییت قلت الالمین اللهم رو بیو رو بیو رو بیو اللهم کل رليخ انه جزیب بناسان صلواتك علیه و في هذه الساعة و في كل ساعة دمینا تحافظ المقارد مناصر و دلینا و عنا حتا تسكنه و في و بیار و بیار و همین باشه و ما رو در این جامعه و طلب بگیم و خدمت بزاری رو در حجمی تسیم خطبارت کمکی هم این محمد خب بحثی که فرمویدن هر این خدمت دوستان باشیم از این جهت این سخت سخته چون موردن فلسفی یا نظام ساز ضرورت و خواستگاه این بحث سخته از این جهت که شما عزیزانی که اینجا تشید بابردیم اگه احساس ضرورتی نسبت به موضوع نداشتید خب نمی آمدید بنابراین یه درکی دارید از ضرورت و توضیح این ممکنه یه مقدار کننده باشه دوباره دیگه و خیلی شاید زیاد نیاز نباشه اما حقیق تلاش میکنم اون درکی که خود شما هم دارید با آشنایی عاشنایی ضرورتی حسیم اون ضرورتی که یه مقداری فهمیتر توضیح بدیم یه مقداری دقیقترش بکنیم با هم دیگه که درکی که داریم شاید بتونیم مقداری با عمق بیشتری، با وسعت بیشتری به عزیزان کمک بکنه امیدوارم بتونه اتفاق بیفته. اگر هم حرف تکراری شد پیشاپیش یا پیش خدمت شما عرض شد که من با این مقدمه بحث را آغاز بکنم شما عزیزان توی این سالهای کلبگی که بودید حتماً این تعابیر به گوشه خون زیاد حالا فقه, فقه خلاق بامانه بخور و فقه نظام سازه داشت تعبیر میشه. یا فقه حکومتی یا واژه یا فقه تمدنی واجه فقه اجتماعی یا فقه الاداره و امثال ما. یا فقه اضافه شده به برخی از موضوعات، یک دوره بحثی یک کتابی نوشته شده فقه اخلاق، فقه سیاست، فقه اقتصادی اسلام و و و یا در دنیای اهل سنت راجه‌ای مثل فقه مقاصد، فقه اولادیات و و و یا در ابتدای انقلاب دوگانه مهمی به نام فقه پویا، فقه سنتی این واژه ها به گوش هممون خورده شنیدیم حالا کم و بیش متضاد از سوی اساتید متفاوت این ها علامت چیه اینا حاشیه از قاعدتا من اسمش رو این میذارم میگم از توصیه قلمرو فرق یا توصیه قلمرو مسئولیت فرق و انتظار از فرق در مقایسه با سنت قبلی خود فقه یعنی فقه در گذشته یه توقعی شده یه, یه تعریفی داشته به تعبیری یه موضوعی داشته یه قایتی داشته یه روشی داشته تو تعریف علم و تمایز علوم با هم نگه میگن گاهی وقتا تمایزشون به موضوعه گاهی وقتا تمایز علوم بعضی هم میگن نه به موضوع نیست به قایته پس یا به روش پس یا میگم به با هم هست وحدت علم به تمایزش از سایر علوم به دغاز موضوع قایت و روش برمیگرده این تعابیر جدیدی که هی بیان میشه حاکی از اینه که مسئولیت جدیدی داره متوجه دانشی فقد میشه که دیگه در تعریف گذشته فعل که در اون موضوع فقه یک موضوعی مطرح می شه مثلا افعال مکلفین را باید احکامش رو بگوید بعد تو 52 تا باب فقهی مثلا کتب فقهی ما بوده حالا 52 تا که 55 تا مثلا 3 تا اضافه شده این موضوعاتی هستند یه قایتی داشته، قایت فقه چی بوده؟ مثلا فقه احکام عمل مکلفی رو میگه بگونه ای که به تعبیر فقهی و خودمون مؤمن از اقاب باشه یعنی معذریت و انجزیت داشته باشه به تعبیری معمن از اقاب باشه یعنی شما علی به حکم شرعی عمل بکنی مطمئن باشی اقاب نمیشی حجت داری پیش خدا قاید فقر بوده این حکم ما رو، حکم عمل مکلفین رو به گونه‌ای بگه که مکلفین از اقاب الهی در امان باشن اینا تعریفیه که بیان شده به کتبتون روشیش چی بوده؟ روش مصطلح فقری بالاخره عدله‌ی نقلی بررسی می‌شده استظهار عرفی ازش می‌شده لوازم عقلی اگر برسجا قادشته از ادله نقلی گرفته می‌شده همه این ها متکی به یک قواهد سیره اقلائی بوده یعنی اجمالاً یک قواهد عرفی، عقلی، اقلائی در فهم از ادله که عمودتاً ادله نقلی بوده چون که اجماع که برمیگشت باید کاشف از به بیان محسوم میگو به نوعی به اون برمیگشت عقلاً اگر بگیم که خودش منبعی حد در یکی تا گزاره بسیار کلیه عملاً بازگشت همه عدده برمیشت به نوریات یعنی یا گرمان خود عادیس بود؟ روایات ها سیره عدویت هم برحب و حدیس بسنم یک روش استزهاری موضوعی روشی قایتی بویا این, ای قایت ای؟ بو این سطح کفایت نمیده مسئولیت جدیدی متوجه برد شده که میتواند به نوعی موضوع قاید و حتی روش ففقه رو ارتقا به بحشان. اما ریشه این ارتقا سطح مسئولیت چیه؟ چرا این اتطاره شده؟ یکم اونو دوباره باقابی کنیم تا بتونیم بهتر بفهمیم این ارتقای مسئولیته یعنی چی؟ چه ارتفاع رو خواهد می ببینید دوباره یه مقدمه یه در روی مقدمه هم یه متن بحث به یه معنی اولین نکته ایجورتش توجه کنیم تا این تعبیل یا تعبیر ارتقاع سطح توقع یا سطح از فقر یا سطح مسئولیت فقر رو بشیم اول نقطه که باید بهش توجه کرد تغییر وضعیت زندگی مردم در دنیا اومنیه اول میگم زندگی ولی دریفت برشاره بگونم تغییر وضعیت مدیریت زندگی مردم در دنیا یعنی اساسا یعنی با یه نگاه تمدنی وقتی امروزه ما تو فضای تمدن مدرن تنفس میکنیم همه ما شرق و اسمش تمدن رو گرده واقعی یک شرق داره با همین حالا به تعبیر از این تاقای تمدون رو بگیم فضایی که در اون فضا انسان ها دارن زندگی میکنن مجموعه شرایطی که در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی همه اینها رو در نظر ساختارهای اجتماعی، نهاتهای اجتماعی، مسئولات مصرفی همه این شرایطی که ما داریم درش درگی میکنیم یعنی تمدنی که درش درگی بی کنیم. مدنیتی که شکل گرفته و نوع روابطی که شکل گرفته اینا عمدتاً در این چند سده اخیف یه روندی در دنیای غرب ساخته شده و به سایر دنیا هم صادر چه عرض کنم انفاس شده یعنی در واقع تحمیل شده و بعضا اول با تهدید اونها رو طالب کردن و همه ما ما که دارم میگم ما تاریخیمون رو دارم از می خوام هویت دارم از زدیم که ابعاد تمدن غرب رو بگیریم که به تعبیر خودم پیشرفت کنیم توسعه پیدا کنیم مدرن بشیم بروز بشیم همه دنیا اینطوری شدن ما صرفا مختصده بمثلن ما نیستیم فضای راجع روی هست خب این تمدن مدر در این تمدن وضعیت زندگی مردم و مخصوصا وضعیت مدیریت زندگی مردم در مسیر توسعه و پیشرفت به شدت با گذشته با صدرهای قبل متفاوت شده دگرگون شده این رو ای دقت بکنید چون اگه عمق مسئله رو اینجا متوجه نشیم اون عمقی که میخوام در ضرورت فقه نظام ساز از می اونو خوب نمی دوباره به این که ما باید یعنی یه تعبیر اولی از نکنم یه تعبیری که فقه نظام سازه برم. فقهیه که بلاخره ما همیشه در فقه ما پاسخوی مسائل مستخدسه بوده دیگه. درست شد همیشه مسئله های جدیدی پیش می آمده. مسئله های جدید هم باید جواب می دهده. حالا ممکن میگیم یه حکومتی شده. مسئله های جدیدی که تعدادش بیشتر شده. تجمش بیشتر شد. ولی دیگه بیشتر از این که نیستش که فقه نظام ساد. فقهیه که حالا مسائل هم. من مثلا مسائل حکومتی هم شده جزا مسئله های فقیل باید اینا هم فکر کن فقر چیزی بیش از گسترش کمی مسئله های فقر نیست من این توضیح که میخوام اعرض بکنم میخوام بگم این نیست صرفا فقر فکر کنید صرفا یک توسعه کمی در مسئله های فقر پیدا شده کناشی از مثلا این هستش که شیعه و فقهای شیعه به یه حکومتی رسیدن. قبلا حکومت نداشتن، خب حالا حکومت رسیدن، پس مسئله های جهیدی بلاشون پیدا شد. صرفاً این نیست، این بخشی از مسئله است اما صرفاً این نیست. این توضیح میخوام خواهد بکنم کنم که اون ام و دوستان متوجه بشن، حروضه. احتمالا توجه داریم من تأکیدن عرض بکنم یاداوری یادآوری بکنم خب مدیریت در دنیای چه تفاوتی با گذشته کرده ببینید در گذشته های تارکیلی در گذشته های پیشا دوسته اخیر حکومت داری به تعبیری امر بسیطی بود ساده بود. خیلی پیچیده نبود. پیچیدگی سیاسی شاید داشت همیشه بوده یعنی آدمهایی که دنبال قدرت بودن به قدرت برسن بعد قدرتشون رو هرز کنن نگهداری کنن یک قلمروی روی رو تحت سیطره خودشون در میارن بالاخره باید محاسبه سیاسی میکرده فکر میکرده تدبیر میکرده اما پیچیده به این معنا نبود که یک دم و دستگاه محاسباتی و علمی به شکلی که در دنیای امروز برای اداره جامعه و مدیریت توسعه اجتماعی ضرورت پیدا کرده در گذشته چنین ضرورتی وجود نداشت جوامع تأسیس تر بود ساده‌تر بود زندگی پیچیدگی از مقدمات قطعی تمدن مدرن پیچیده شد و نکته مهمتر اینکه این پیچیدگی دیگه از طریق یک نفر قابل تشخیص نیست با یک تخصص قابل تشخیص نیست یعنی مجموعه از دانشها، ها علوم و اطلاعات و آگاهی ها کنار هم توی روندی مدیریت تحولات جامعه رو رقم میزنن چی رقم میزنن نرسی کردن؟ این رو دوباره مطلب بعدیه خوب ده. مدیریت تحولات میکنن پس ببینی یه مطلب اینه که اساسا تفاوتش با گذشته این شد که به شکل بسیف و ساده و یه نفر و دو نفر و با و ذکاوت مثلا وزیر اعظم یک گوش و ذکاوتی داشت وزیر مثلا خاجن نظام بارک توسی بود یه هوش و داشت با اون هوش و یه مملکت رو اداره میکرد الان صد تا خاجن نظام توسی بیاریم بذاریم باید اونها مسئله هر نمیشه ده ها سازمان رشته دانش دست به دست هم میدن تا مدیریت اتفاق بیفته با یه نفر محاسبات یه نفر مسئله حل نمیشه اصلا حال نیست شما یه رهبری نظام برای ابلاغ یه سیاستای کلی تو یه حوزه خاص مجبور کلی تیم کارشناسی و متخصص تو مجمع تشخیص مصلحت نظام و این طرف و اون طرف و فلان دانشگاه و فلان مرکز امنی تحقیق و مطالعه و بعد تشت یه زفه 6 تا بند کلی حوزه فلان اصلا چنین امکان پذیر نیست چون مطالعاتش خیلی مطالعات پیچیده و گسترده شده. همه به هم رب داره. باید همه چی در هنزار گرفته بشه. درست شو این یه نکته. نکته دوم موضوع این مطالعه چیه؟ در گذشته. امدتا حاکمان و حکومتها مسئله اصلیشون حفظ قلمرو حاکمیت و خودشون و به تحبیلی حفظ نظم اجتماعی بوده. دیدید ما دو یک چیزی واجهه داریم به نام اختلال نظام پیش نیاره خیلی این نمفقه های ما میگن. این عدویت سنتی ماست اختلال نظام نباد نظم اجتماعی به هم بخوره فقه دوتون بعد به نظم اجتماعی رو حفظ کرد حاکم وزیفش چی حفظ نظم اجتماعی از طریق چی؟ از طریق قانون اما دولت های مدن، دولت های موزی یعنی یک چیز دو صدایی اخیر مخصوصاً دیگه قرن اخیر به شدت در 150 سال اخیر به شدت مسأله شون فقط مسئله نظم اجتماعی نیست یا توسعه قلمرو فیزیکی نیست مسئلهشون شون توسعه است پیشرفت علاوه دربیر داخلی خودمون الان تو کشور خودمون یه حاجی باشه نظم اجتماعی رو خوب برقرار کنه ولی همه های جهانی مثلا پیش مردم مرونی عجب حاکم ناکارامدی همه دنیا پیشرفت کرد ما عقب مانده ای. اصلا به واژه عقب ماندگی و پیشرفت این واژههایی که امروزه پیدا شده تحولات سرمه در بسیار بکی و کمونده بوده مسئله حاکمان و حکومت ها و حاکمیت و دولت ها در پیش دوران مدر مسئله مدیریت توسعه نبوده. مسئله یه نظم نظر بوده. حالا یکی که حاکم قدرت طلبی بوده میخواسته این قلم روه خودش رو که او حاکم بوده برای حفظ نظر. تا حالا به طلبش ممکن منافعی هم داشته. هم حب قدرت داشته هم حب ثروت داشته. یه چیز داشته بلاقره. یا اگه آدم آلنه هم بوده که حالا اگه پیدا کردید. سلام درسونید اونا در دقیقه توصیح عدل و عدالت بین مردم داشته عدل و ایستا تعریف می کردن نظم و ایستا تعریف می کردن جامعه رو یک ام یک موضوعی، یک کلی به تعبیری یک وحدتی براش قائل نبودن که در حال تعبیر و تحول و توصیح و پیشرفت به سمت یک نقطه مطلوب و یک آرمان رو یک اوتوپیایی مثلا این نبوده اما وظیفه و و کارکرد امروزی از دولت ها, ها، کارکرد اصلی حکومت ها مدیریت توسعه است. اصلا نزول رو بر به توسعه تعریف میکن یعنی نزمی است که ما رو به توسعه برساند. این بحث دقیق فلسفه سیاسی سر جای خودش میتونید بعدا پیگیری کنید. مسئله بسیار بسیار مورده اینجا دوسته تواوض اون نکتهی که میخوام عرض بکنم ریشت میگه است خب وقتی نحوه اداره جامعه از یک طرف از طریق توسعه دانش‌های مختلف شد این حجم از دانش‌های تخصصی که امروز در دنیا پیدا شد از رشته های علوم فنی و مهندسی و علوم تزیشی گرفته تا اونا ایجا مستقیماً بهداره جامعه رب داره وضع علوم انسانی و وضع اجتماعی هست. انواق تخصوص ها. یه اقتصاد که نیست هم اون یه اقتصاد. توی اقتصاد چقدر گرایش داره؟ می‌دید و هر گرایشش دوباره موضوع تخصصی دارید. یه اقتصاد وازرگانیه. هم فرقصاد وازرگانیه. مثلا اقتصاد فلانه فلانه فلانه. اوه هم تو دو دوب نه اقتصاد بازاردامی مثلا من تخصصم تو حوزه صادرات افتادامیش صادرانی من کارم تو اقتصاد زعفرونه ده میده خودش یه دانش با کلی مسئله برم اقتصاد زعفران، مسئله کوچیکیه فکر کردیم من براش آکادمی زدم، آکادمی زعفران می یعنی مسئله هایی که در گذشته بسیار ساده بوده همه یکی یکی یکی یکی تبدیل به دانش داره بشت. و از طریق این نظام دانشی توسعه جوامه داره رقم بکنه یعنی جوامه دارن به یه سمتی حرکت میکنه اون سمتی که حرکت میکنن میشه بگید چیه؟ سمتیه که به سمت تقرب الهی و عبودیت و بندگی خدا و قرب الهی و آخرت و ایناه اصلا نیازی که کنم به توضیح هم نداشته باشید یعنی شما یه دو تجاربه همی الان قضیت خودتون رو دنیا رو ببینید. این مدوگدو این تحرک این محاسبات ما برای اینکه ببینیم ای چطور به یک عاقبت بهتر اخروی برسیم، خود چراغینه. ارتباط بهش همین زمینه‌ست. همینجا رو عاقبت داره. نقد و بحث مسیو چیه؟ خدا کیو بعد یه جایی دیگه نه، نمیتونن در مقابل خدا مقاومت کنند. در مقابل گرایش‌های دینی مقاومت کنند. چرا؟ میشه فطری داشت یاله این اعتقاد ماست. بایدن چهایی هفته احاق دینم به درد توضعه میخوره کجا ایجاد آرامش میکنه کنه باید دین هم به نفر توضعه زمینی شروع کردن مساهله کردم. گفتن یه جاهای یه حرفای خوبی هم پیام برا زدن و به به درد توضعه مادمین رو مثل که یه چیزایی متوجه بودن اومدن با مثل خودشون گرس کردن حرفای دینی رو بایدن کجا به درد میخوره؟ ازش استفاده کنیم. مثل این روانش نظار دیگه این یک حدیث یه, یه آیه پیدا کنه خوب با بود تئوری را هم اجراسیش یعنی اسلام هم اینو گفته آم. یعنی اسلام مورد تایید قرار گرفته. تا از قراصات علم و تجربه بشه. خوب؟ خوب دقت کنید در دوچریف نفاقه میوفته. یلا شواش یه دوگانه جدی میشه هم باورمون میشه دو وزام خب اینا امور دنیوی هستن امور است. اینها امور مادی است، ها امور معنوی است. دین که به امور مادی کار نداره اینا بشر با عقلش نمیفهمه با تجربش میدونه پیدا بکنه متوجه بشه اینا که تدبیر امور زندگیه امور زندگی که رابطه به دین نداره شباش شباش دین روز به روز به محاق داره میده محاشیه میرسید یا خبه این این پیدا شد بازی رو هم داشت میرس به محاق دیگه این دنیا هست یعنی روند چند سده اخیر دنیا رو که نگاه بکنیم همینه همونم جریان رایج میخواد این باشه اما تنها جریانی که مقاومت کرد جریان اسلام این رو فکر باید چیز فهم غرب خودشون هم گفتند و میگن کتابشون هم هست خب امام اومد رو خودم دین اومده برای چی؟ دین اومده برای اداله دنیای مردم دیگه دنیا مزرع آخرت از نحوه ساماندهی همین دنیاست که سرنوشت و ها رو هم معلوم میکنه دین نگه فقط یه عباداتی بگه تو اونا رو انجام بده خب امور دنیایتم که خود تدبیر می تدبیر امور دنیا با حدیدیم بوده هم بیا زندگی یاد مردم بدن و مدیریت کنن زندگی مردم را اداره کنن جامعه را و مردم را و زندگی را چون شکل زندگی سبک زندگی است که سرمشت اخروی رو هم تاریم. حدر از یک چیز نیست اینجا مسئله شنگ دیگه پیدا میشه مصئله انقلاب پس دارید یه اتفاقی تو دنیا افتاد امر اداره جامعه روز به روز از کعالیم انبیا فاصله گرفت. و به دست نظام دانشی که ادعا میکنه با تجربه و عقل داره کار میکنه ولی این نظام علمی نظام علمی مطقنی نبوده و نیست شما مدام نظریه های علمی مختلف و متنقه در حال تولید ابطال و ایجاد جدید. یعنی میگن علم علم که تجربه بشری است تجربه بشری یک سرد رو تجربه کنن سرد جور با دیگه اختلاف میکنن این یکی یه نظریه میده میکی یه نظریه میده یه حرف که نداریم که یا دیگه این دیگه معلوم این معلومه سفیده شان خواهی بگید چون دین گفته ما سیاهه ما سیاهه ما دیگه تجربه کردیم این حرفا دیگه الان نمیشه دارن حرف حرف بچه است. هست کسی یه ذره فلسفه‌ی علم بلد بشه این تجربه فرضیه کاملا جهتدان یعنی بار ارزشی داره بار ایدولوژی داره در جهت در مایتیه بعد خودش کلی اختلاف بینه، اندیشمندان تو هر رشته علمی وجود داره قیلی که بین رشته هم دوباره کلی درگیری وجود داره نظر یه پردازان کلی با هم دیگه بحث رو جدل دارن یه حرف ثابتی که نداره مثل امبیاء ادانی میستن که بگن تمام ما یه حرف بزنیم ثابت قرآن بگه سبا حالا تحبیر قرآن اشتر همه شو یه حرف میزنن لا،, لا نولو الاییا لا اله الا الا لا اله الا الا این که نیستش پس <تصفح> تصف مدیریت جامعه موضوع شد از حفظ نظم تبدیل شد به مدیریت روند توسعه یعنی مدام باید بگن خب اگه بخواد یه پله بریم بالاتر باید جامعه رو چه تحقیبی درش ایجاد کنیم كدون بودی از جامعه رو چه وزنی بهش بدیم چقدر حمایت کنیم چه چیزایی رو مانع بشیم که توسعه پیدا کنه تا در برآیند کلی حرکت جامعه جامعه توسعه پیدا کنه با چه ابزاری این محاسبه رو می کنن دولت ها با ابزار علم و نظام دانشی موضوعش شد توسعه مدیریت توسعه اداره جامع برای تحقود بسه و مدیریت تحولات خوب دقت کنیم مدیریت تحولات امر ایستا نیست امر متحوله مدیریت تحولات برای چی نیده به توسه افزار شیع دین کجاست اگه این گلوگوش جای جایی پیدا شد کنست به این روندی خدمتی بکنم خوبه بایی بایدار نکنم بذاریش نکنم حالا وقتی که میای بگیم از این طرف میگیم دین شغن دین اینه که اداره جامعه رو کنه دین اینه که رشد بندگی ما رو مدیریت بکنه شغن دین اینه که اتفاقا به من کمک کنه تو مسیر بندگی روز به روز از دیروز بهتر باشم <تصفيق> وقتی شنه دین چنین چیزی شد اینجاست که حالا این ضرورت ارتقاء تفقیل و فقر معلوم میشه برای چه چیزیه حالا اینجا نمید که کمی دقت رو وقتی توی این فضا شما میگید ما نیازمند توسعه قلم رو و مسئولیت فقه هستیم به این معناس که یعنی فقه باید از مقیاس گذشته خودش مقیاس سردی بوده تنظیم روابط فرد حتی اکثر حتی اگر به امور اجتماعی هم میپرداخته از منظر حاکمیت و حکومت به معنای امروزی حتما دیگه نموده چون فقیه دانش فقیه قیل از منابع اصیل ما یعنی قرآن و روایات ما میگم قرآن و با, با توجه به اعتقادی که به خاتمیت داریم میگیم منبع لایزال فکر و معرفت پاسخوی همه نیازهای چون دین خاتمه هست تا زمان تا بیان قیامت، دین خاتمه دیگه و معارف وحیانی ما برای هدایت بشر در زمانهای پس از نبی اکرم هم بوده دیگه برای اموز ما هم هست، است. اگه کافی نبود خدا باید پیامر جهیلی میفرست دیگه خاتمیت معناش همینه اون منبع کامله از یوم اکمل داده اون دینه و عتمن تو علیکم نامتی بیروت شود دین کامل البته با بخش ولایتش این سر جوش یعنی یه رکشش رو رک نزدیش این یعنی کنندگ، ازش نگم یه رکشش وحیه یه رک نشم اتراضه که این هم هم مفسر هم مبین وحی هم محقق کننده اون وحیه این دو تا دین با هر دو جزش با هم کنار هم کامله ولی بالاخره کامله نیازه این ما رو جواب میده اما فقه کامله فقه دانش بشریه یعنی دانش خوگه های ماست که مدام سعی کردن ارتبالشون ببخشن به تعبیل از اطلاقا خب مگه شما فقه شرک انساری مگه مثلا با فقه علامه هلی میشه مقایستش کرد با فقه. فقه اون رو میشه با فقه شرک دوستی کرد هرچی میاد جلوتر سعی میکنن تفسیل بدن تطورش هم موضوعاتش گسترش کمی پیدا میکنه چون مسئله های جدیدی پیدا می شود اون هم عمق بررسی و نحوه استدلال کردن و استدلال ورزی افضایش پیدا کیفیتشم احتقا بیدام حالا برگردیم موضوع فقه امروزه اگه بگید حالا اگه بگید دین باید مسئول نسبت به سرپرستی تحولات بشر حالا اینجور گردیم آیا دین مسئول است یا نه سرپرستی این تحولات به عهده دین و انبیاء الهی و بعد اولیاء الهی و حالا در دهان قیبت امام است به عهده فوقه ها هست یا نیست یا نه باید بگیم نه دین یه اصول ثابتی داره تحولات که امور بشریست این امور بشری باید در چارچوب قواعد دین اتفاق بیفته. اینو خوب متپس کنه. این نگاه حداقلی حد اعلی حد نگاه حداقلی میگه امور مادی زندگی بشر اینه که امور مادی بشر همیشه تجربه ها جدید میکرده فناوری های جدید پیدا کرده حالا هم روز به روز همیشه همس آینده هم خواهد. این ترتیبی به دین نداره. میاد اون حدود صخور اون جاهایی که از این تحولات رفت داره به آخرت ما اونو میگه حدود صخور میاد خط قرمز معلوم میکنه به تعبیری میگه از این جاده اون طرف نری یا این طرف نری این وطن فقط خاصیو این نگاهه بدینه واسه این نگاهه نگاه درده. این نگاه لازمش اینه وقتی و حتی حتی امام محسوم نیاز نداره حاکم باشه چون حاکمه که بستر حرکت به یه جهتی رو معلوم میکنه دین شهن نگهبانی از حدود سهوری رو داره شهن راهبری نداره دین شهن نظارت برای عدم تخطی شما از خط قرمزها رو داره فردی کارش مراقبت از تحولات است که یه وقت تحتی از مبازین اسلامی نکنند فقی کارش راه بری تحولات در یه جهت خاص نیست یا نه فقی شهنش راه بری تحولات مبتنی به فقه است. فقه یعنی چی؟ فقه تمام عمل میگه دیگه حالا اینجا ظرفیت فقه میاد به کار اون ارتقای مقیاس به میگیم آیا می توانیم موضوع و قایت فقه رو ارتقا بدیم فقه خاصه عمل مکلفین رو بده برای چی برای اینکه اونها از عقاب الهی در امان باشن کاری که میکنن میشه خدا فردا حجت نشه ورن ما کار اطلاف شهر انجام ندادیم عذاب نشه اینشالله ثواب ببرم هر چند کار خیلی بیشتر که ثواب بیشتر ببرم درست شد؟ یعنی نه اولا فقط این نیست نه که این نیست اینکه هست اما فقط این نیست موضوعش فقط عمل آهاد مچدلفی نیست موضوعش سرپرستی راهبری راهبری تحولات اجتماعی میتونیم بگیم این موضوع فرده؟ چرا میگیم چون اساساً دین کارش اینه ما میگیم دین چرا فقه داره میگیم فقه تنها دانشی در میان دانش های اسلامی که حکم که دو تا خاصیت بسیار برجسته و ویژه داره یک به شدت قواعدمند و منده و توش مفهوم حجیت مفهوم بسیار مهمیه یعنی اجازه نمیدن که دانش فقه شما قطری بگی اسلام این را میگوید اسلام را میگوید. ممکنه ما بالا منبر راحت راحت‌تر باشیم، گفتم، الان بشیم. میگیم یه آیه می‌خونیم، یه روایت می‌خونیم، واسه میگیم ما اسلامی از اسلام خوندن. تو مقام موعظه و تذکر و فلان و اینها یه وقت ممکنه من منبری من آخودم یه حسی بزنم خیلی دقیق نباشه. ولی تو فقه بیان حرف ندارم. صرفا من یه فتوا بدم، یه چیزی رو اسناد بدم بگم دین این را میگوید فوت نمیکنم. کلی بالا پایین و استدار اینا تا بگم نه مثلا بله الان نماز صبح تو اگر این گونه خوندی شک کردی تو نماز دو رکتی باطله و یه نماز مثلا چهار رکتی این طوری باطل نیست اون باطله پدرم و درم میاره تا استدار کنه ولی وقتی یک حرف رو در موزه میخوام بگم حرف معارفی میخوام بگم که ایمان مردم رو اثبات بدم یاد مرگ بندازن میشون. اونجا خیلی حساسیت نیست دانش به عکس یعنی شما تو سایر دانش های هوزمین و اسلامی این سطح از حساسیت که بگیم با چه در با چه ای این حسرو به اسلام نسبت میدهی تو فلسفه که میری استدلال عقلیه میمه استدلال عقلیه. حالا دین نمیده که من تعهد به دین ندارم. من اینجا تعهد به واقعیت دارم مثلا. یعنی هر, هر دانش دیگه بری یه جوری دیگه است. فقه اولین خصوصیتش اینه. دومین خصوصیتش اینه دانشی که داره حکم عمل میده. میگه این کار را بکن، این کار را نکن. دانش تجریزی. توصیف نمیکنه. بگه عالم اینجوری است. تو عالم موجودات که بنامان ملایکه وجود داره. صرفاً تجربه، یعنی تجریفی حکم هم میده ما الان اگه ما جامعه را اداره کنیم نیاز به دانش بر اساس اسلام اداره کنیم نیاز من دیگه دا دانشی هستیم این که اولا قاعد من باشه رابط من, رابط من. تا ما بتونیم بگیم اسلامی داریم جامعه را اداره میکنیم اسلامیت اداره جامعه به که دانش پشتیبان اداره دانش زابط من مندی مثل فخ باشه حالا فخ اگه ارتقا پیدا کنه بگیم موضوع من اینه ظرفیت روشمندیشو بیاره پای این کار پای این مسئله پای این موضوع وقت شما میتونید میزان اسلامیت اداره جامعه رو افشا کنید میشین بگی ما بر اساس آموزهای اسلام در جامعه رو اداره میکنیم از این جهت نیازه و بعد خود اداره میکنیم یعنی حکم عمل به لاخر میدیم مدیریت جامعه میکنیم یعنی بالاخره در میگیره جامعه مدیریت جامعه تصمین میگیره این کار انجام بشود اون کار انجام نشود. این تصمیم این بودجه به این شکل توزیع در کشور به آن شکل توزیع نشود. این امکانات به, آن به این شکل محدودیت براش ایجاد بشه به این شکل محدودیت براش ایجاد نشه، شروع میکنه قواهه، زوابط، فراینده، ساختارا تصمیم عملی پس از این جهت دوم هم هست یعنی حکم عملی، زابط من دستایی میخواد بشه میگید. تنها دانشی که ظرفیت داره بیاد پشتوانه قرار بگیره فقر فقر ساز یا فقر حکومتی یا فقر تمددونی این توابیدی که میشه همه شمده میخواد به این بچه شاره بگید. میخواد بگه فیض باید مقیاسش ارتقا بده از حکم آهاد مکلفین رو بیان کردن باید بیاد تو مستقا و مقیاس احکام اداره جامعه را بیان کردن قرار بگیره. احکام اداره جامعه در دنیای امروز چالش پیدا میکنه با چی؟ با نظام علمی رایج. چون امروزه اداره جامعه در دنیا توضیح قبلی مقدمات توسط علوم و دانش ها داره اتفاق میفته. مجبور نظام نظامساز تعین تکلیف کنه. چه نسبتی با این علوم و دانش ها دارد؟ نمیخوام نخیه مطلق بکنیم و؟ فرقی نمیتونه بگیم. من میخوام جای علم و تجربه و همه چی باید نه. بیشت وقت نمیتونه اینه چون خدا هم اینو قرار نداده خدا برای تجربه شعنی قرار داده شده برای تأکل شنی قرار داده شده ولی وحیم شعنیه شعنش آیا اینها حوضه هاشون از هم منفکه این همون مقالطه یک عرض کردیم میگن خب اینها حوضه تجربه است، اینها حوضه عقل هست. و نظر هست اینها هم حوضه وحی هست نه اینها این وقتی اینطوری کردیم تا هی جدایی دین از سیاسته خب قرارم هم داره همین رو میگه دیگه و چی داره میگه میگه اتفاقا این امور تدبیر جامعه اینه اینه یه کار تجربه ما تجربه کردیم اگه این کارو بکنی ابزارهای توازن جامعه بخوره اقتصاد سلاح بشه تورم فرامونشه تجربهش و آ آ آ آ رتو بوزه رهاشایی شه بر بر بر بر بر بر تو, تو همه علوم انسانی اجتماعی هم اینجوریه بهم گفت علم انسانی و اجتماعی عمومی که داره با معرفت و نفس سروکار می‌کنه نه همش عمدتاً روشاشون تجربیه. عمدتاً تحلیل‌های نظری هم داره از انسان خودش سر جای خودش. اما علوم فنی اوناش نمیشن. بله و آنزینا اصلا اون‌هاش وارد نمی‌شن. بلا علم انسانی اجتماعی. برای چی حضرت آقای جو گفتم ما تو علم انسانی اجتماعی هر چی پیچیده‌تر بکنی تو مسیر فتنه‌سازی عقب الهی چرا؟ چون این علوم انسانی اجتماعی گیر داره نه مسئله که اون معلوم باید باشه یه سطحی از دانش تجربی لازم داریم اما اون دانش تجربی همینه فق چه نسبتی باشده؟ فقه نسبتشو رو تعریف کنه فقه اگر نسبت خودش را با علوم انسانی اجتماعی تعریف نکنن نمیتواند فقه ساز باشن نمیتونه باید تعریف کنن بچته ما ضرورت رو میگم ها. میخوام ضرورت رو عمیق کنم تو ذهنتون. شما ضرورت رو میدونید اجمالا تو عاشقا هستید و اذعان دارید ها یکم تعمیق کنید. صورت مساله عمیق به صورت مساله دیگه سطحی نگاه وجه پس موضوع فقه باید از این که فقه یه قواعدی رو میگوید که نظم اجتماعی رو ملاحظه میده حدود و را بیان میکنه. از این باید التفات بدهون نه فرق موضوعش سرپرستی، مدیریت، حکومت اصلا یعنی همین دیگه حاکم اسلامی و معنای که فقط دستور میدهد نیست ولیه. ولی چیه؟ ولی رشد جامعه است. ولی محبت داره زیر دستش. با محبت میخواد این رو رشد بده تو مسیر خدا. ولیه. دستور که نمیده فقط. دلسوزی که چرا اینا رشد نمیکنن چرا این جامعه رشد؟ اتفاقا غایت فقه نظام ساز دیگه چی؟ تامین از عقوبت نیست. سرپرستی رشد ما تو علوم سنتیمون علم اخلاق و علم عرفان تلاش میکنه از روی سرپرستی رشد کنه. مثلا بیا به یه نسخه. کار ندارم اصلا غلط یا درسته. ممکنه من خودم نه که اتفاقا خیلی زیاد عغیر مثلا با فوسیه های نظری نظریهی موافق نباشن. ولی نگم دانشیه که موضوع خودش رو چگونگی سرپرستی رشد معنی و ارفانی فرد فرق قرار داده. مثل فقه نیست. فقه میگه حکم خدا اینست. بگم خود الان من چیما کنم معنی کار رو مثلا بسند که خیلی آنم برمشه. خودم به من نده. من حکم خدا رو گفتم. فقیه اینجوریه حالا کی اتفاقا ممن که میخواد نظام ساز بشه میاد جامعه رو که نگاه بری جامعه رو تدریجی باید بده باید رشد جامعه رو در مسیر تقرب الهی و توسعه بندگی مدیریت کنه اینجایی که نقش زمان و مکان مهم میشه یعنی چه شرایط زمانی است چه شرایط مکانی است نسخه ویژه این جامعه در این شرایط مخصوصاً در درگیری با یه نظام مقابلش که نظام استکباری عالمه تاووت جهان سردمداران کفر و نفا نسخه ویژه جامعه در این شرایط چیست؟ این جمع فقری که از امام توی این مجرورانیت میگه فلخه. میگه کسانی که با هم اداره جمع... در واقع حالا این تعبیر رو بخونم حالا کسانی که درگیر را اداره جامعه میشن مستقی بشن که فقه مصطلح حوزه ها برای اداره نظام و جامعه کافی نیست در این آنی که همون امام میفهمنن من معتقد به فقه جلاهری هستم و تخطی از آن را اصلا مجاز نمیدارم همون امام دو تا پراگرام چهار تا پراگرام پایین ترش یه فقه مصطلح حوزه برای دارس کافی و خب بعد این معادله رو حل کرد دیگه یعنی چی این یعنی اون ریشه های اجتهادی که تعبد و جیت اصلی به منابع وحیانی به عنوان منابعی که هیچ خطایی درش نیست و و این جنس چیزا وای لغاص بشه اما روش استظهار اینجا برای این که وقتی موضوع فقل ارتفاع پیدا کرد قاید فقل ارتفاع پیدا کرد رومان یکی بخونم، رومان یه از تعریف علم فیض. خب شما مجبورید روش این علم رو هم ارتقا بدید شما نمیتونید موضوع رو مقیاسش رو عوض کنید که قبلا موضوع احکام کلیه، عناوین کلیه بوده سلات، سوم، زکات. امرای معلوم جهات و جهاد این جهاد اینوان کلیه درست شد موضوع فقه مص... فقه مستلح ما اناوین کلیه اناوین کلیه تک تک اناوین رو بس میکنه این حکمت چیز بعد فتوا میده شهن فقط چیز فتوا خیلی ارتقاء پیدا بکنه شهن فقیه چیز غذا هم هست غذاوزم آقا شهن فقیه برسی شد ولایت موضوع فقحش دیگه صرفاً عناوین کلیه نیست موضوع فکرش موضوع سرپرستی تعاملات راهبری تعاملات اجتماعی راهبری تعاملات اجتماعی دیگه یه دفعه نباید حکم راجع به یه موضوع بده در آن واحد باید نسبت به چه تا موضوع اظهار نظر کنه و بینشون وزن بده بگه اینو 20 درصد بهش بپردازید اینو 50 درصد اینو ده درصد اینو با این روی کردن رو با اون روی کرد اصلا این حکمه خیر از حکم قدیمیه که بگفتیم واجب هست نرام از مصرحب است. حکم مدیریتیه اداره جامعه است واجه اداره رو خوب دقت کنید تو کلمات عزیز امام و تو کلمات عزیز آقا مدام این واجه رو میبینی. اداره زندگی مردم اداره امر حکومت اداره جامعه اداره و مدیریت یعنی اشکی اصلا جنس حکمی که باید کنه خود به خود بقاله اینا باعث مبانی و جلسه بعد ان شاء الله توسط عبدالبدری خواهند بود ولی میخوام بگم وقتی موضوع فقر ارتباط پیدا کرد و بعد قایتش هم از حد تامین از عوادت رفت و سرپرستی قانون موضوعش اونطوری خود به خود روش دیگه نمیتونه در حد گذشته باقی بمونه و ضرورت داره روش هم ارتقابی داره اما اگه از اصول فقه جبایلی تخطی بکنه، غلطه درسته؟ یعنی حجیت رو بخواد از این بره همون که از امام فرموندن بخواد به حجیت توجه بشه مثال بزنم امروزه دیدید دیگه کتاب هم میبیسن بعضی ها فوزرهای حوزبی هم هستن آدم با تقوی هم بعضا استاد خود ما بودن ولی اصلای کتاب می‌میسن یه دفعه یه جایگاهی به عقل در کشف استنباطات دیریم می‌دن که یه دفعه می‌گیم خب این چه فرقی کرد با قیاس و استحسان و استحسان و, استحسان و احسانت خب منان... بله فقر می‌خواد تو اصلای جدید وارد شد ولی به دفعه منابع ما همین آیات رو باید بناس از اینای استنباطی بکنیم یه نسبتی برقرار کنیم با مسئله‌ها آگه بناس بگیم نه چون اسلام عقل را قبول دارد اینا هم که عقل, عقل بشری است دستاوردهای بشری فلسفه ولایت عالیه قزوینی همه دنیای مدرن تمدن مدرن امضا کردی اسمش گذاشتی تمدن عقلانی فرق هم هست این که پاک کردن صورت مسئله است حواسم باشه اینجا ما نیاز تحول روش داریم توی روش باید منابع فقر ازجابی بشن قواعد عرفی عقلی و ولایی همثال و استظهار از ادله مورد بحث قرار بگیرن رحمت الله علی شیستت به شدت این اینها تلاش های کردند. کردن برقی اساسی دیگه تلاش کردند. ولی هنوز جای کار خیلی زیاده جای کار خیلی زیاده من دیگه بیشتر مسدد نشم وقتم تمام تصفیه کنم تا ضرورت در واقع فرق نظام ساز با یه ادبیات نسبتا هم کردن فنی و علمی تحمیل بشه که ضرورتش برگردونیم به ضرورت ارتباع مقیاس موضوع و بعد قایت فر و به روش فرق یعنی فقه اومانی دانش که بگیم موضوع قایت و روش دارد این دانش با ارتقاع مقیاس در موضوع و قایتش که این هم به طبع تحولات که امروزه در دنیا اتفاق افتاده ضروری شده من از ضرورت اینی اومده اینم با عواظ باشه من ضرورت نظریه ارتقاء معیار استفقه نگفتم اون رو هم میشه گفت با مبانی معرفت شناختی میشه گفت ولی اون خیلی نظریه خشکیه خیلی مدرسیه به قول مدرس. دعوا و مناقشه هم پیش زیاده جای گفتگو و هم زیاده به این راحتی به نتیجه نمیرسه ولی ضرورت اینی وجود داره شما اگر ارتقاء معیار مق... فقه رو تو این سطحی که عرض کردیم یعنی موضوعش رو تو این مقیاس التقا ندید و واقعیتش رو این قرار ندید عملاً فقر و به تبعش دین منزبی خواهد شد یا دین با انواع ها و ها معرفی میشه و جاده کنه همین روند تمدنی کمونیه دنیا خواهد شد که اونم تمدنی در جهت توحید و خدا و آخرت و چیزا که از روز روشنده برسته پس این رو عرض کردم که اینم حواست باشه من از ضرورت عینی توضیح دادم شما اگر معتقدید که دین باید در تحولات عینی جامعه مسیر بشر رو و مسیر ساخت تمدن رو راهبری کنه چرا؟ چون زندگی اخرافی بشر ربط به همین ساخت زندگی دنیا بیش دین متکفل دنیای مردمه. تعبیر از توابه اینه که مهمترین مبنای فکری از رضای ما، حالا این جمله یادم نیست ولی این تعبیر ما رو خود از سواز که مهمترین مبنای فکری بکنم این تعبیرشون باشه، میفهمم که حضرت امام اومد برگردون فراموش نه آورد دین اتفاقاً کارش آباد کردن این دنیاست یعنی دنیا مزرعه آخرت است. دنیا رو جوری سامان بده است. که مقدمه آخرت بشه و دیگه نه اینکه امور اخروی جدا از امور دنیای جدا. است. این امور مادیه با تجربه بشری میشه این امور معناییه. رابطه اینها مهمه. مهم مهم مگه مسلمان نه فرق رابط وجود رابطه. پاک کردیم، صورت مسئله رو پاک کردیم چون در مقابل هجمونی و حیمنه و سلطه علم و فناوری و تمدن قرد باختیم کنیم دین، مگه تو این زمین آن حرف میتونه داشته باشه وقتی میگیم دین هست داره، که همه چی رو مستقیم از خوران و هندیست در بیاریم بیرم؟ ای این توضیح دادم آه. گفتم نفیه. کار تجربه و تجربه و آزمایش و آزمون و خطا به تعبیل دانش تجربه گیریم نباید کرد ولی مهم رقص برقرار کردن بین این استنباط شما استنباد که چگونه این ها راهبری می کند و جهت می دهد به این فعالیت تجربی. حضرت آقا یه ای دارن در که سه چهار سال پیش وزبیان خدمتشون رسیدن فهمودن خوزه باید جهت بدهد به همه علوم به همه علوم، به تحقیقات همه علوم خب این جهت دادن با چیه؟ با توصیه اخلاقیه؟ باید همه دانشمندان علوم همه دنبال خدا باشید، برای خدا کار کنید اینه، اینکه توصیه اخلاقیه نه نه به تحقیقات علمی باید جهت بده، چطور؟ با این ها با این خواه‌ها بگیم این بگی کار فقر نیست یه فقر به معنای اهم ما یک دیگه در پایانی هم از دو کنم این که بخواد تو این مستوام وارد بشه بگیم فقط حجم تکلیفی یا تجویزی نمیتونه بده مجبور یه جایی وارد عرضه توصیف از چیستی ها و حتی تبهین عرضش ها و قایات هم بشه برن. یعنی شما نمیتونید بگید فقه نظام ساز کاری به قایاته دین و ارزش‌های دینی ندارد. فقط حوشم عمل را میدهد. نه نسبه مجبور. مجبور به عرصه استنباط ارزش‌ها، اخلاق توضیفات. توصیفات از عالم هستی موضوعات و مسئله ها وارد بشدن. فقر نمیتواند دیگه به موضوع شناسی وارد نشود. تو این ممتاز. یه وقت شما میگین موضوع شناسی مثلا من الان خودکار اومده اینجا رو دست این موضوع رو باطل میکنه یا نمیگه فرق به این موضوع شما اونا وارد نمیشه و اونا تشکلت موضوع به عده مکرفی نفسیه امور فردی درسته ولی وقتی به امور پیچیده مدیریتی اونوز وارد میشی اتفاقا کلایی که سر ما میگذارن از همین ترین یه اصداد از کن یه اصداد یه اصداد یه اصداد یه اصداد یه اص این فهمو دوایل انقلاب می‌داشتیم. ا البته من با واسطه انجام می‌کنم، فهمونن که اوایل انقلاب رفتیم سازمان برنامه‌کوچه این طرف اون طرف به برنامه برنامه‌ریزی کشور باید اسلامی باشد نه نه اینا. بعد بعضی از این کارشناسای چیزفهمه، درس خونه خوب، درس بلد، ولی خب به ما خوانده و دین و, و به این مذهبی که مادریم نداشتن. گفتن آقا شما بگویید شما بیشتر میلیت به نظام سرمایه‌داری و لیبراده یا به نظام بقیر مرد چپگرار و سوسیالیستی و اینا ما از رساله براتون هر دو, دو تشون توی در بریم غیرم نماشیم با احکام رساله هر دو تشون بیشتر بریم شما کدوم میخوایی برو برای در بریم که شما رازیشیم خواهم بگم یعنی این سرم رو کلا میزنن اگه وارد موضوع شماسی نشید. من یه مرسی میدیدم، مال فکر کنم، بدود ست ساله پیش عوالی رو بعد از قانون اساسی که داشتم قوانین مدنی رو تو کشور تدوین میکردن به روغدان ها، یه آقای اگه اشتباه نکنم، اسمش دوتر متین بود توی چی، اگه اشتباه، شایدم اشتباه کنم مثلا، یعنی قرآن نیست. اونجا اینجوری میگفت. اون امور روانیون خیلی وارد به مسائل حقوقی نیستن ما بلدیم چطوری اون چیزی رو که می‌خوایم با استفاده از همین چیزایی که آقایون میگن اونو محقق کنیم تا تشت... حالا این الان عین بولت اون عین جمله یادم نیست ولی یک یه... یه جوری توسعه بده یعنی ما میتونیم سعی کنیم کلا بزنیم مشکل نداره وقتی که تأسیس موضوع و آدم مکلفین است و بودی کارشناسان از عملا حاکمیت کارشناسان می‌شوند. کارشناسان یه یه نظام دانشی سکولار دارن تو حوزه علوم انسانی و اجتماعی که پیلاست دیگه کار خودشونو خودشو میکونه هم هرچی بو شه ماvarphi میخوریم ما ما ما, ما که حالا از جمله اون طلبه های یعنی هرچی بو یه نظام بلاعتبی میخورن یه هرچی ناکارآمدی مال این نظام عملا حاکمیت دست ایشونه هشکیز موضوعات کارشناس ها کارشناس, کارشناس این دستگاه محاسباتی کارشناس میشه پیش نسبتی با دستگاه فقاحتی ما داره پیش نسبت تعریف شده ای فعلا نداره امیدواری میشه الله ما ها بتونیم هم کنیم کمک کنیم ولی جامعه رو کمک کنیم از از آقا رو کمک کنیم شده که بتونیم تو جهت اینکه که واقعاً ولایت فقیه بشه با. نه ولایت یه دیگه عملاً توی یه سری تصمیمات کلان در مسائل اقتصادی در مسائل اجتماعی در مسائل فرهنگی، چون اگه کسی که بخش تصمیم های مدیریتی کشور متوجه میشه که دستگاه کارشناسی چه به سر ما میانه همین دستگاه کارشناسی ما بود که بحران جمعیت این رو برای ما به وجود رو. شما برید ببینید استدلاله های فنی کارشناسی اول دهی افزاد تمام متخصصیم همه یک صدا این اگر این کار رو نگونیم بحران پیدا میشه بعد چه شد؟ المان شده, شده بحران کشور بحران جمعی خب این چه نسبتی با فکر داشته چه نسبتی داشته؟ سن فلان گذاشتم تو همین مسئله جمعیت وقتی ردیابی میکنی میبینی در امریکا در چند تا بنیاد که وابسته پنتاگون بوده به نتیجه رسیدن که افزایش جمعیتی کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که فلان, فلان, فلان, فلان و فلان و فلان اینها به zarar توسعه قدرت ماست محاسبه کرده بودن چون جمعیت فاکتور مؤلفه قدرت است ما نباید اجازه بدیم این اتفاق بیفته. بعد شروع کردن طراحی رشته علمی در دانشگاه های آمریکا و تربیت نیرو، نیروهاشون اعزام کردند به ایران، پاکستان و چند کشور دیگه. اون نیروها اومدن توی دستگاه های اجرایی ما و دانشگاه‌های ما رشته های علمی طراحی کردن با نام با نام و عنوان علمی کنترل جمعیت، یه هم گذاشتن چی؟ اصلا شداشم بودم، در تنظیم خانواده، حقوق زنام و هم هم هم، برای شرشت فرکت کارن، کارشناس تعریف کردن، حاک... حا... حاکم، شدن. ما هم گفتیم، این هم ما اگر به ضرر اسلام باشد، بده است. اگر من اینکه همه میدونیم که همه جا هست این چیه؟ چه نصفتی داره؟ بکنیم یا نکنیم؟ اون و برسول پس این تایید و متنجده است.